سوريه دخان. من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. المبين. لیله مبارکه ان لکنا من ذی الله که بخشایند به رحمت است آمین مثلا به این کتاب بیان کننده حقایق که ما آن را در شبی مبارک نازل کردیم و ما حشدار دهندگان حقیقی بودیم در آن شب هر کاری بر اساس حکمت تنظیم می کار ماست و ما فرستنده بودیم همه اینها رحمتی از جانب پروردگار توست زیرا او شنوا و آگاه است اوست پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست اگر گغین داشته باشید هیچ معبودی جزو نیست زنده می کند و می, می پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست در شک خود سرگرم بازی هند. پس منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری ظاهر نماید و مردم را فرا بگیرد این همان عذاب درناک است. پروردگار عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می آوری. چگونه و از کجا متذکر میشوند در حالی که پیامبر آشکارا به سراغشان آمد سپس از او روی برگرداندند و گفتند تعلیم یافته دیوانه است ما اندکی از عذاب را برطرف میکنیم، اما بار دیگر شما به شیبه پیشین باز می در آن روز که قدرت مندانه آنها را گرفتار کنیم، انتقام خواهیم گرفت. قبل از آنها، قوم فرعون را امتحان کردیم، در حالی که پیامبری گرامی به سراغشان آمد و گفت، بندگان خدا را به من تحویل دهید، زیرا من برایتان پیامبری امین هستم و نسبت به خداوند تکبر و برتری جویی زیرا من دلیل روشنگری برایتان الله و اگر مرا محکوم به سنگسار سار کنید بدانید که من به پروردگار خود به شما پناه بردم و چنانچه به رسالت من ایمان نمی آورید، از من کنارگیری کنید سرانجام پروردگارش را دعا کرد که اینها قومی مجرم هستند. پس گفتیم شبانه بندگانم را ببر تا آنها تعقیب کنند درگاه را در آرامش کامل پشت سر بگذار که آنها لشکری غرق شدنی هستند آنها چباغ ها و چشم سارهای از خود به جای گذار شدند و قصرهای زیبا و نعمت هایی که در آن در, در شادمانی بودند به همه آن نعمت ها را میراس مردم دیگر قرار دادی نه آسمان و نه زمین هیچ کدام بر آنها گرگه نکردند و هیچ مهلتی به آنها داده نشد ما بنی اسرائیل را از عذاب خار کننده از دست فرعون زیرا او بر جوی و اسرافکار بود ما آنها را آگاهانه برگزیدیم و بر مردم جهان برتری دادیم و آیات و نشانه را به آنها دادیم حالا که در همه آنها امتحانی آشکار بود اینها میگویند مرگ ما فقط همان مرگ اول است و ما دوباره زنده نخواهیم شد اگر راست میگویید پدران من را به دنیا بیاورید آیا آنها بهترند یا قوم طبع و کسانی که پیش از آنها بودند ما همشان را هلاک کردیم زیرا مردمی مجرم بودند ما آسمانها و زمین و آنچه را میان آنهاست به بازی چه خلق نکردیم ما آنها را جز به حق نیافریدیم هرچند اکثر مردم درک نمیکنند. روز جدایی هم پس باطل میادگاه همیان ها اولا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحیم روزی که هیچ دوستی برای دوست خود نفعی ندارند و هیچ کدام آنها یاری نشوند مگر کسی که مشمول رحمت الهی گردد زیرا او قدرتمند و با رحمت است راستی درخت زقون قضای گناهکاران است همانند فلز مذاب در شکم ها قلیان میزنند قلیانی چون آب سوزان این مجرم گناه کار را بگیری و به میان آتش پرتاب کنی آنگاه بر سر او عذاب سوزان بریزی بچش که تو همانی که میپنداشتی قدرتمند و محترم هستی این همان است که پیوسته در وجود آن تردید میکردید. اما حرمت داران حریم الهی در جای امنی هستند در باغ ها و چشم آنها لباس از حریر نازک و حریر زخیم پوشیده و روبروی یکدیگر می حال حال بهشتیان این چنین است. و آنها را با هوران آن بهشتی تزویج می دهید. هر میوه‌ای که بخواهند در اختیارشان است و آنها در امنیت کاملند. در آنجا مزه هیچ مرگی را نمی مگر همان مرگ اول که در دنیا چشیدند. و خداوند آنها را از عذاب جهنم حفظ می نماید. اینها فضل و رحمتی از جانب پروردگار توست و این همان پیروزی بزرگ است. ما بیان رسالت را بر زبان تو آسان کردیم. امید آنکه حقایق را بفهمند و پند بگیرند. پس تو منتظر باش. آنها نیست. منتظرند فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ صدق الله العلي العظيم رابسكو <تصفيق> خداوند بلند مرتبه بو از این <مكانت> کاری از مؤسسه قرآنی پیامبر مهر و رحمت الله علیه و علیه و سلم